فصل سیوم این صده ی نوزده چه برای ما هم را خواهد داشت هنوز نمیدانم. آغاز خوشی نداشته است و همچنان بد پیش می رود. اروپا دست خوش واپسگرایی است نوآوران چه بناپارتیست ها و چه جاکوبن ها همه شکست خوردند دور دور سلطنت طلبان و یسوعیان است. از آرمان های دوران جوانی ما، از عصر پرستش دانش و آگاهی، از امیدهای بزرگ سده هشده هم جز خاکستری به جا نمانده است. این دفتر را از آن رو مینگارم که جای دیگری را برای بیان اندیشه های خود نمی شناسم. هموار آدمی آسوده و اهل خانه و خانواده بودم. بی هیچ بلند و بی هیچ تب طب بزرگزاده و آزادندیش بودم و همواره قانون را گرامی داشتم. هیچگاه خود را به دست تون روی های سیاسی رها نکردم و امیدوارم که پس از این نیز چنین باشد ولی دلم آکنده از اندوه است. در گذشته وضع این گونه نبود. تا برادرم بود پیش خود می گفتم او به جای همه ما فکر می کند و من کاری ندارم جز این که زندگیم را بکنم. برای من رویدادی دادی که نشانگر عوض شدن زمانه بود، فرارسیدن نیروهای اتریشی روسی یا زمیم شدن سرزمین ما به پیه یا برقراری مالیاتهای تازه و چیزهایی از اینگونه نبود. روزی به دگرگونی زمان پی بردم که پنجره را باز کردم و برادرم را بالای درختان ندیدم. اکنون که نیست حس می کنم که باید به بسیار چیزها اندیشم، به فلسفه و سیاست و تاریخ چند نشریه را مشترک شدم کتاب می خانم. به مقزم فشار می آورم ولی آنچه را که او میخواست بگوید در این نشریه ها و کتاب ها نمی آبم حقیقتی که او جستجو می کرد از تیره دیگری بود حقیقتی یک پارچه بود که نمی شد آن را با واجه ها بیان کرد بلکه باید با آن و در درون آن زندگی می کردی گونه که او زیست. تا دم مرگش سرسختانه به خیشتن وفادار ماند و تنها به این وسیله بود که توانست به ما درسی بیاموزد آغاز دوره بیماریش را به یاد دارم زمانی به ناخوشیش پی بردیم که دیدیم بسترش را روی شاخهی از گردوی بلند وسط میدان گذاشته است تا آن زمان به پیروی از غریزه حیوانیش، همواره بستر خود را از دیگران پنهان می داشت. ولی از آن پس، چون این می که نیاز دارد، همواره جلو چشم مردمان باشد. و من دلم پر از درد شد. همیشه فکر کرده بودم که او دوست ندارد تنها بمیرد. پس شاید آن کارش نشانه این بود که مرگ خود را نزدیک میدید. نردبانی گذاشتیم و پزشکی را به بالینش فرستادیم. و او پس از آنکه پایین آمد، با اشاره‌ای به ما فهمان که دیگر کاری نمی‌شود کرد. خودم از نردبان بالا رفتم. گفتم ما الان دیگر شست و پنج سال داری تا که ای می خواهی این بالا بمانی. چیزی را که می‌خواستی بگویی گفتی. و ما همه فهمیدیم. اراده عظیمی از خودت نشان دادی. پیروز شدی. حالا دیگر می‌توانی پایین بیایی. کسانی هم که همه عمرشان را در دریاها میگذرانند بل آخر روزی پا به خشکی میگذارند. گوشش شش بده کار نبود. با حرکت دستی گفت: « نه. دیگر نمی حرف بزند. گهگاه پتویی را به خود میپیچید و روی شاخه مینشست تا کمی آفتاب بخورد. تنها حرکتی که میکرد همان بود. پیرزن مهربان نیکوکاری که شاید در گذشته ها بود، می رفت و جایش را مرتب می کرد و برایش خوراک گرم می برد نردبان را همانجا گذاشته بودیم تا بماند زیرا هل لحظه ممکن بود برادرم به کمک نیاز داشته باشد و نیز امیدوار بودیم که سرانجام پایین بیاید البته دیگران چنین امیدی داشتند ولی من میدانستم او چگونه آدمی است هموار کسانی در پیرامون درخت او جمع بودند تا تنها نباشد با یکدیگر گپ میزدند و گه چیزکی هم به او میگفتند گرچه روشن بود که برادرم میلی به حرف زدن ندارد. حالش بدتر شد. تختی را بالای درخت بردیم و جایش را درست کردیم. افسوس خوردیم که چرا زودتر به این فکر نیفتاده بودیم. حقیقت این است که از هیچ وسیله راحتی روی گردان نبود. تنها به شرطی که بتوان آن را بالای درختان به کار گرفت. همواره کوشیده بود که در آن بالا آسود تر زندگی کند. پس از کار گذاشتن تخت دست به کار شدیم تا جایش را هرچه بهتر کنیم پرده هایی به دور تخت کشیدیم و آتشدانی برایش بردیم حالش کمی بهتر شد یک صندلی راحتی بالای درخت بردیم و آن را به دو شاخب بستیم روزها خود را در پتویی میپیچید و روی صندلی مینشست ولی یک روز صبح او را نه در بستر و نه روی صندلی ندیدیم وحشت زده نگاهی به بالا ترها انداختیم. خود را به نوک درخت رسنده و روی شاخهی نشسته بود. تنها پیر هنی به تن داشت. چرا رفته آن بالا؟ پاسخی نداد. چون این می نمود که خشک شده و معجزه ای او را در آن بالا نگه داشته است. سفره بزرگی را که برای زیتون چینی به کار برده میشد زیر درخت بردیم. بیست نفری آن را نگه داشته بودیم. می ترسیدیم کازیمو از آن بالا بیفتد و کارش ساخته شود. در آن حال پزشک از درخت بالا رفت. کار دشواری بود. مجبور شدیم دو نردبان را سر هم سوار کنیم. پزشک پایین آمد و گفت: وقت آن است که کشیشی به سراغش بفرستید. قرار گذاشته بودیم کشیشی به نام دون پریکلس را برایش بفرستیم که از دوستان او بود. کشیشی که, که در زمان ها از قانون اساسی طرف داری می می‌کرد. پیش از ممنوع شدن فراماسونری، عضو لش بود و پس از درگیری‌های بسیاری که با کلیسا داشت، به تازگی کار خود را از سر گرفته بود. دون پریکلس با وسایل ویژه مراسم واپسین توبه، همراه با پسر بچه‌ای از درخت بالا رفت. چند دقیقه آن بالا ماند و پنداری با کازیمو گفتگو کرد. سپس پایین آمد. پرسیدیم خب، آخرین توبه را عدا کرد. نه، نه، اما گفت که احتیاجی نیست. احتیاجی به توبه نیست. بیش از آن چیزی دستگیرمان نشد. کسانی که سفره را نگه داشته بودند، کم کم خسته می شدند. کزیما پوچکترین تکانی نمی خورد. تندی وزیدن گرفت. نکه درختان خم می شد. همه دست خوش دلهوره بودیم. آنگاه بود که بالون بزرگی در آسمان پلیدار شد. دو هوانورد انگلیسی در کار پرواز روی منطقه ساحلی بودند. بالون زیبایی بود که جایگاهی حسیری داشت و پرچمها و نوارهای رنگی از آن آویخته بود. دو افسر انگلیسی با پاگونهای زردوزی و دو گوش نکتیز در جایگاه بالون ایستاده بودند. چشمانداز زیر پایشان را با دوربین تماشا می کردن. دوربین های خود را به سوی میدان شهر گرفتند براستی که صحنه شگرفی بود مردی نشسته بر نکه درخت صفری بزرگی در زیر آن و انبوه جمعیتی که پیرامون درخت میلولیدند کزیمو سر خود را بلند کرده بود و با کنجکاوی بالون را تماشا می کرد. ناگهان بالون دست خوش گرد باد شد چون فرفری به چرخش افتاد و نیروی باد آن را به سوی دریا کشید هوانه وردان بیان که خود را ببازند، دست به کار کم کردن باد بالون شدند و در همان حال لنگر آن را پایین انداختند تا شاید به جایی گیر کند. لنگر نقرگون از ریسمان درازی آویزان بود و در هوا تاب می‌خورد. همچنان که کچ کچ به دنبال بالون کشیده می‌شد، از بالای میدان گذشت و به نکه درخت گردو نزدیک شد. ترسیدیم که مبادا به کوزیمو بخورد، اما آنچه پس از چند لحظه پیش آمد حتی در تصور ما نمی کنجید. در همان آنی که لنگر به نزدیکی برادر پا مرگم رسید او با همان چستی دوران جوانیش جستی زد و ریسمان را گرفت و خود را به لنگر چسباند و پاهایش را دور آن حلقه کرد باد بالون را برد و کوزیمو همراه با آن پرید و رفت و بر فراز دریا ناپدید شد بالون از بالای خلیج گذشت و در آن سوی آن به زمین نشست لنگرش همچنان آویخته بود و چیزی بر آن دیده نمیشد. هوانوردان که همه حواسشان پی کار خودشان بود متوجه هیچ چیز نشده بودند گمان ما این است که برادرم در گرم و گرم پرواز در میانی خلیج ناپدید شده باشد بدین گونه مره حتی این دل خوشکنک را به ما نداد که پس از مرگش او را به زمین ببریم. در مقبره خانوادگی امان را به یاد او گذاشته ایم که بر آن نوشته است. کوزیمو لاورس دوراندو میان درختان زیست، همواره زمین را دوست می داشت. به آسمان رفت. همچنان که این دفتر را می گهگاه دست از کار می کشم. و به نزدیک پنجره میروم آسمان توییست است برای ما سالخوردگان عنبهرزا که به زندگی زیر های سبز درختان من عادت داشتیم دیدن چنین آسمانی دردناک است گویی پس از رفتن برادرم درختان دست از پایداری برداشتند یا اینکه مردمان دچار تبه تبر شدند وانگهی گیاهان ما دگرگون شده است آنچه اکنون در سرزمین ما میروید، روید نارون و بلوت و سندیان نیست آفریقا و استرالیا و آمریکا و هند است که ریشه می دواند و شاخه می گسترد درختان قدیم به سوی بلندی ها پس نشستند. زیتونها زیتون ها بر تپه ها و کاج ها و شاه بلوط بر کوه ها می روید. بر کناری دریا آنچه به چشم می آید سرخی اوکالیپتوس ها و انجیرهای تنها و قولاسا های استرالیا است و نخل بلند و بی صحرایی که میهمان نوازی نمیدانند. مررازا دیگر وجود ندارد. هنگامی که آسمان توهی را نگاه میکن از خود میپرسم که آیا به راستی هرگز وجود داشته است؟ آن شاخه ها و طنه و انبوه برگ های بیکران، آن آسمانی که تنها لکه‌های از آن جست و گریخته به چشم میآمد، آن دنیای سرسبز شاید تنها برای برادرم وجود داشت که با گامهای سبک سنجابوار خود در میان آن میگشت. نقش و نگاری بافته شده بر زمینه هیچ و پوچ بود همچون خط سیاه مرکبی که من بر این کاغذ می نگارم و صفحه ها را یکی پس از دیگری با آن پر می کنم. با همه ی و پس و پیش رفتن ها و لکه ها و جاماندگی ها. خطی که گاهی گردی هایی را تسبیحوار به رشته می کشد. گاه نشانه های کوچکی را نقطه وار رقم می زند. گاهی راه رفته را برمیگردد می و گاه به دو بخش می شود. گاه تکه های جمله ای را جمع می کند و بر بستری از برگ یا ابر می نشاند. خطی که گهگاه می ایزدد. سپس دوباره به خود می پیچد و می دود و می دود. پیش می رود و واپسین این خوشه ی و پندارها و رؤیاها را دربر می گید.